رخداد، نادرستی نظری های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی، با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان برنامه رخداد از صدای امید در قسمت سیزده این برنامه در خدمت شما هستیم در دوازده قسمت گذشته که به صورت قسمت پونزده دقیقهی در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم میخواهیم بحث نجاد و بحث تکامل زیستیه دارمین رو مورد نقد قرار بدیم و جانمایی اصلی کلام ما است که چیزی تحت عنوان نجات در تاریخ بشریت معنا و مفهوم نداره و ما می‌خویم این مسئله رو نقد کنیم که باعث مصیبت‌های بسیار فراوانی در یکی دو قرن اخیر برای بشریت شده طبق معمول برنامه‌های گزارش در کنار جناب آقای ایران مهر هستیم ضمن که 바라ولیک باشم از می‌فرمایید در خدمت شما هستیم شروع بفرمایید ان که بحثا ادامه بدین خواهش می‌کنم زنده باشین آقای دکتر محبی منم درود فراوان میگم به شما و شنوندگان گرامی امیدوارم که تا اینجا برنامه ها مفید بوده باشه ما تلاش میکنیم که ضمن پرداختم به متن هواشی مربوطه رو هم از نظر دور نکنیم و تا جایی که وقت و زمان و اون کلیت برنامه اجازه میده به هواشی این گفتار هم بپردازیم بله. من در خدمت شما هستم قشنم. حالا بله. دنبالی بحث بخش دوازدهم بله. رو شما داشتین بله ارز کنم که در قسمت های گذشته به یازده تا واکنشی که نسبت به نظریه داروین مطرح شده بود توی غرب چه از طرف مسیحیان و حتی از طرف شناسان و حتی فیلسوفان تجربه گرایی که ازاسا پوزیتیویست هم بودند و حتی ملحد هم بودند ولی نسبت به همین نظریه داروین که ستون پایی مدرنیته هست نقد وارد کردن رو بررسی کردیم در این قسمت به صورت تیتوار بنده که بوده اونها رو خیلی تیتوار خدمت از می فرمایم عرض می بعد بحث رو دنبال می کنیم. اولین تعارض تعارض در آفرینش انسان که در کتب آسمانی هستش که خدمتش عرض کردیم دومین تاارض تعارض در علت ال الل اولی است که توسط فیلسوفان مطرح شده تعارض سوم تعارض در برهان نظم هستش تعارض چهارم تعارض در نظام ارزش ها اصول اخلاقی هستش و اونجا هم ما عرض کردیم که نظامی که تحت عنوان سرمایه‌داری در جهان هستش و بر اساس همین برهانی که داروینیزم مطرح کرد اجتماعی مطرح کرده که فقط تنازع بقا هستش و نیروهایی که و اون نیروها و اون نهادهایی که میتونن تعارضی که در بقای بین نهادها و نیروهای دیگه هستن اونها رو شکست برن و به وجود بیارن و اساسا اصول اخلاقی چه اصول اخلاقی عقلانی و چه اصول اخلاقی که در وسط خود بشر نگاشته شده توسط کتب آین ها و ادیان مختلف و حتی عدیان مختلف هم ما در زندگیه در علم فلسفه اخلاق هم زیر سوال میبره اونها رو مرد بررسی قرار دادیم و همچنین تعارض در, تصمی... در تفسیر حکیمانه و هدفدارانه خلقت هست ما خب در حال حاضر بشر در شاخه های مختلف علم به جاهایی رسیده حتی از ستاره شناسی و اختر شناسی، اختر فیزیک به بگیر تا ریز اتم شناسی این مسئله تقریبا اثبات شده که خلقت و نوع نظمی که در این جهان و عالم هستی وجود داره از یک صبات و از یک نظم هدفدار و قانونمندی برخوردار هست لذا این نظریه تکامل با این نظم هدفدار در تضاد هستش هایی که ما از آخرین تضاداتی که عرض کردیم که در واقع در قالب اون 11 تا واکنش می گنجد تعارض در کرامت قدسی انسان هستش که خب حالا برخی ها معتقدن که این حالت قدسی رو برخی ها زیر سوال بردن مثلا مثل فروید و مارکس و و تحود نیچه و فیخته ولی باز هم در جهان امروز یک ام نظریاتی وجود حتی در جهان قرد که یک کرامت قدسی انسان داره نسبت به سایر موجودات زنده و اون رو ما باید در انتقاداتی که نسبت به نظریه داروین در دوره‌ای که تا حال در تمدن غربی و چه در تمدن‌های دیگه بر علیه اون نظریه مطرح شده اینا رو در قالب اون قرار بدیم. آی دکتر ببخشید یک پرسش اینجا پیش میاد. ما این مثلا قدسی بودن انسان، رو در برخی اندیشه‌ها که فراگیرم هستن، این وجود داره. این صرفاً با نظریه مربوط به شخص آقای داروین نمیخونه و تناقض داره یا با یافته های دانش ژنتیک هم همین مشکل رو داره یا نه دانش ژنتیک پاسخگوه و فقط نظریه آقای داروینه که کامل نبوده و نتونسته پاسخ بده اینو یک مقدار کنم حضورتون که حالا خیلی سوال جالبی رو مطرح کردید اونایی که درس حقوق جزا و جرم شناسی خوندن به. خب میدونی که پدیده تحت عنوان جرم که به عنوان یک رفتار غیر عادی یک انسان در واقع ازش یاد میشه چه اتفاقی میفته یک انسان که انسانی که در واقع میتونه عشق به محبت به دست به جنایت میزنه دست به جرم میزنه یه علمی به وجود اومده تحت عنوان علم جرمشناسی بله. که اتفاقا این از مسائل مختلف از زیستشناسی از روانشناسی و از جامعه شناسی مسائلی رو در واقع وام گرفته و مورد برسی قدر یکی از علم ژنتیک هست یک دانشمندی هست به اسم گریگوری مندل بله. اوتریشی هستش بله. که البته برخی نظریاتش خیلی در واقع افراطی هم هست حالا بعضا شاید تا شاگردانش به افراط کشیده برخی خیال فکر کنند که در واقع ژن رو به وجود در واقع, واقع کشف کرد انتقال صفات از والدین فرزند ها یه لحظه رو به وجود آورد معتقده که جرم و اساساً چیزی که تحت عوامل رفتار غیر عادی از انسان سر میزنه غریزه نیست میدونین که غرایز از انسانی به انسان دیگه به ارث میرسه و تمام انسان این رو به صورت فطری دارن ولی چیزی تحت عنوان جرم و رفتار مجرمانه که در واقع رفتاری هست که بعضی رفتارهای حتی غیر انسانی و وحشیانه و حتی حیوانی هم میشه ازشون یاد برد اینها رفتارهایی نیستن که به عرص برسه ولی یه سری خصوصیاتی در وجود انسان هست که اینها اگر درست تربیت بشه میتونه به یه سمتی کشیده بشه که اتفاقا متقدم. مثلا انسان هایی که دارای استعداد جنایت و استعداد جرائم یافته بسیار وحشتناکی رو دارن برد. اگر تربیتشون و نوع در واقع رهبری خسائل و در واقع خصوصیات اخلاقی و منش رفتاریشون به راه درستی تربیت بشه و رهبری بشه اتفاقا مدیران بسیار موفقی هم میشن برد. لذا اینجا هم حتی در علم ژنتیک هم ما داریم که اون نوع کرامت و نوع قدسی حتی قدسی خب حالا قدسی که ما بگیم چون یه بار انتظایی به خودش میگیره، یه بار در واقع مذهبی به خودش میگیره چون ما نمیخوایم اینجا از یک مذهب خاصی در واقع طبعیت بکنیم یا از مذهب خاصی دفاع بکنیم یه حالت محضوریت قرار میگیریم ولی یه تفاوتی که بین ژنتیک انسان و سایر حیوانات وجود داره که به مسامحتا از او به عنوان یک وضعیت قدسی برای انسان همون اشرف مخلوقات منظورتونه بله دقیقاً بله لذا اینجا ما بگیم اشرف مخلوقات این هم این که تفاوت ژنتیکی نمیشه آی دکتر یعنی مثلا, مثلا اینه که ما اشرف مخلوقاتیم ولی مثلا کرگدن اشرف مخلوقات نیست این به تفاوت ساختار کروموزومی ما و فامتنها و جنهای ما لزومن مربوط نمیشه درسته جنوم انسان الان دیگه جنوم پیچیدهی که میتونه مغز رو تو فرایند, تکام... فرایند رشد و نموش پدید بیاره یعنی از لحظه ای که نطفه بسته میشه مشخصه که این نطفه با این نوع کروموزوم و جنا یه مغز هجیم پیشرفتهی خواهد داشت من. نسبت به مار این مشخصه دست. اما من این پرسشم اینه که اشرف مخلوقات بودن ما صرفا مربوط به مثلا این که ما کروموزام همون شکلش مثلا این شکلی نیست مالوانا یه شکل دیگه هست نه خب جمین مسائله این, این نیست ولی خب آه... وقتی که یک رفتاری از یه موجود زنده رفتاری سر میزنه بعد از یه موجود زنده یک رفتار دیگه یا نمی... همچون... همچون رفتاری سر نمیزنه خب علاوه بر اینکه ریشه در تربیت ریشه در یه چیزی که در واقع انسان ها دارن تحت عنوان فرهنگ و در انسان شناسی فرهنگی بحث میشه اونا دارن یه دلایل در فیزیولوژیکی هم داره و این از عمدی ثابت شده است و اه. تقریبا یه ثابت شده است که اتفاقا یه چیزی که استاد دکتر کینیا که اولین استاد جامعه شناسی در ایران هستش ده. و خواهرزاده مرحوم علامه خدا بودن ایشون و در فرانسه برای اولین بار جامعه شناسی خوندن و اومدن ایران و در دانشگاه تهران دانشکده قلوم سیاسی دانشگاه تهران جامعه شناسی تدریس می‌کردن یکی از دانشجویای ایشون شاگرداشون که استاد خود بنده هم بودن ده. یه خاطری از ایشون می یاد میکنن که البته ایشون در یه جایی بعد عرض میکنم که ببینید مسئله فیزیکی فیزیولوژیک چون بحث دو دو تا چهار داست. ما همیشه مشکلمون اینه که انسان ها رو هم پدیده هایی که مربوط به انسان هستن ما اونا رو میخوایم با دو تا چهار تای فیزیکی و علمی بررسی بکنیم. همه جا هم جواب نمیده. میگه که همون گریگوری مندل حدود سی سفت سفت ظاهری و رفتاری رو مطرح میکنه در میان جرائم مختلف. اینها رو بررسی میکنن چون ایشون هم کشیش بوده، هم پزشک بوده و هم بعض وقت در واقع مشاور. دادستانی و ویان هم بوده در مورد مسائل شناسی خیلی کارهای چیزی انجام کارهای بسیار بزرگی انجام داده این حدود سی صفت صفت ظاهری رو مطرکه دید که بین افرادی که معمولا رفتارهای غیر عادی دارن افراد نارامی هستن مجرمن جرم انجام میدن و حالا نمیگه که ذاتن مجرمن اینا ولی مثلا وقتی که حدود هزار نفر جانی اصن قاتل خون بودن اینا رو بررسی رسیدگی کرد مثلا روی 70 درصد این مثلا سی ویژگی توش جواب داده بود یکی از ویژگی هایی که خیلی جالب هستش که البته همه جا جو هم جواب نداد می گفت که اگر فاصله بین دو تا دست و یه انسانی باز بکنه فاصله این دست تا این دستش باست. مثلا 180 سانتی باشه قدش 175 سانتی متر 170 سانتی متر باشه این شخص معمولا اینجور جور افراد 70 80 افراد مجرم هستن. و جرایم بسیار بزرگی هم مرتکب میشد. میگه خود کینیا هم وایسات جلو دقیقا هم همینجور گفت ولی خب من همچه آدمی نیستم. همه جا هم در این چیزا جواب نمیده ولی حالا علی حالا یه سری صفاتی که بله در مورد مثلا اشرف مخلوقات بودن انسان مطرح هستش. نسبت به موجودات دیگه این رفتارها در واقع دیده میشه، برجسته میشه، بود میشه. و رفتار اقلانی از انسان سرزده میشه. علاوه بر مسائل دیگهی که دخیل هستند در این اشرف مخلوقات بودن مسائل فیزیولوژیکی و مسائل ساخته ساخته زیستشناسیه شناختی این انسان هم توش دخیل هستش و لزوما اینجوری هم نیست که این مسائل دخالتی توش نداشته باشه و مسائل زیستی و نوع زیستی یک انسان فیزیکی یک انسان فیزیولوژی و نوع شکلگیری تن یک انسان اینجوری نیست که دخالتی توش نداشته باشه که اتفاقا تو انسان شناسی فرنگ ترمان اروتیس یا تنانگی این مثلا خیلی مطرح هستش که مثلا یک سری انسان یه سری رفتارهای خاصی انجام میدن بعضی جوامع مثلا انقلابخیز هستن بعضی محافظ کار هستند، بعضی جوامع رفتارهای خاصی از خودشون نشون میدن، اتفاقاً اینها رابطه مستقیمی با نوع تنانگی در اون منطقه وجود داره. چون اون منطقه چقدر نگاهشون به تنانگی چجوری هست؟ اروتیسم چه نگاهی به تن دارن؟ چه نگاهی به فیزیولوژیکی بدن دارن؟ مثلا یه نمونه در مورد همین مسئله تو خواهر میانه مثلا این اقوامی که آریایی و سامی و در واقع ترک و اینها مطرح هستش مثلا اروتیس یه وجوه خاصی از زندگی این افراد و اقوام هستش نظر این هم توی ادیانشون تأثیر گذاشته هم نوع زندگیشون هم آینهانشون و هم حتی قوانیشون تاثیر گذاشته و کارش هم در واقع نمیشه کرد اینها هم تأثیر گذارد نه اینکه مثلا فقط این یه معلفه بذاره با یه متقیر ما نگاه نمی کنه های مختلف هستن بله. که تحصیل گذار هستن چه ذاتی چه اکتصابی اینا بله. مجموعش و براینداش رو هم باز تاثیر داره پیچی دست برد بله. اما آقای دکتر ما ارزم این بود که ببینید مندل خب روی گیاه خودفرنگی به طور کار کرد دویست سال پیش خب اون دانش اون زمان اون چیزی که اونا در اختیار داشتن برای مثال، ما هنوز تازه ده سال نیست اون جنوم انسانی نوشته شده بله. اومده تو اون دفاتر ثبت شده و هنوز یک صد کار داره تا اینا مطالعه بشه و تأثیرات این جنها رو هم چل هزار جن دونه دونه رو هم اثر بذارن حالا شما بیان مثلا این شمارش رو بیان ضرب کنین اثرات متقابلش رو هم ببینیم تر به کجا میزنه که صفات مختلف رو درست میکنه این که هیچ این خیلی میتونیم ما درصد بگیم چون معلف های مختلفی دخیلن 90 درصد میتونیم بگیم مثلا ژنتیک واسه موجب شدن یکی میشه نمیتونیم اینو ردش کنیم بله. اما یه چیز ساده ای رو مثلا گفت آقا اگه قلاف مثلا این خودفرنگی فرنگی دو تا مادر و پدر زرد باشه مثلا در نسل بعدی اینجوری میشه در... اگه روی دانه ها چروکیده باشه اینجوری میشه سه تا در نسل بعدی صاف باشه یه دونه فلان میدونین چون ژنومای های مثلا نخ که خیلی ساده خیلی ابتداییه و تاثیرات اونا رو هم این استفاده ظاهریشون خب اما مثلا رو ژوم انسان که ج... فامتن انسان که چه هزار ژن هست خب خیلی تره ما بره. موجودات پیشرفته تری هستیم شاید به این آستونیا نشه گفت اما اون مبانی اولیه که مندل گفت بعدا مبانی علم ژنتیک شد درست شد یعنی اونا بره. بر اون م... اساس میشه چیزای ساده رو توضیح دادیم یعنی یک سر هم نمیشه. این علم رو به خاطری که حالا آدم اینجوری باشه مجرم هست یا نیست نمیشه رد کرد. بلده. علم ژنتیک پایه درسته. درسته. اما خب دیگه حالا این تأثیرات متقابل اینا نیاز به شاید یکی دو صد مطالعه داره. بله دقیقا این علم جدید هستش اما که شما فهمیدید فقط 10 سال هم نیست که در واقع رمزگشایی شده از اصلا ژن های انسان. بسیار متشکرم از حضورتون ما به پایان 15 دقیقه برنامه رسیدیم. قسمت 13 هم اینجا به پایان میرسه انشاءالله در قسمت 14 به واکنش دانشمندان جهان اسلام میپردازیم به نظریه داروین از شنوندگان عزیز بابت حوصله در گوش دادن به این برنامه کمال تشکر رو داریم خداییارو را نگهدار.